سر فصل سوم سلوک امیرالمؤمنین در دوران حکومت است چه سلوک شخصی چه سلوک اجتماعی و حکومتی سلوک شخصی زندگی زاهدانه علی در دوران حکومت و قدرت یک کشور پهناور عظیمی در ید قدرت امیرالمؤمنین بود از اقصای شرق تا نیس تا آفریقا این منطقه عظیم همه, همه دولت اسلامی بود و تحت حکومت امیرالمومنین این حاکم بزرگ و مقتدر با این کشور پهنابر و ثروتمند زندگی شخصیش سلوک شخصیش مثل یک انسان مستمند و بینوا بود با یک لباس زندگی بکنه نان جو و خوش غذای او باشه از همه لذات مادی پرهیز کنه که خود او خطاب به همراهان و همکاران و دولت مردان زمان خود و برمون نکام لا تبقیدون حلا زالک. شما نمیتونید. راست هم میگوه. هیچ کس نمیتوانه. واقعا عجیب این زندگی امیر الماملین، زندگی شخصی امیر الماملین در دوران حکومتش، در یک خانه محقر زندگی بکنه زندگی معیشتی او در حد اقل مثل یک انسان مستمند و بینوا و فقیر اینجوری زندگی بکنه و به این همه کار بزرگ بپردازه پردازه و صلوط اجتماعیش اقامه حق، اقامه عدل استادگی برای امفاظ حکم الهی، از واقعا هر اقلی حیران می شود در مقابل این همه عظمت، این همه قدرت، این چه است؟ این غیر از نقامات معنیلیست. سلوک سیاسی، سیاست دنیا، حکام عالم چجوری زندگی کردن؟ امیرالمومنین چجوری زندگی کرد؟ این هم یک سرخصل مهم نیست که دیگه تا امروز نظیری نداشته است و نخواهد داشت زهد امیر و سلوک شخصی او و عبادت او در دوران اقتدارش، به امام سجاد علیه السلام, السلام ارز کردن که یعنی رسول الله شما چرا اینقدر به خودتون سختی میدید، فشار میارید، اینجور عبادت میکنید، اینجور زهد میکنید، اینجور روزه میگیرید، اینجور گرسنگی میکشید. امام سجاد گریه کرد. فرمود اون چه میکنم در مقابل اون که در که هم امیر میکرد چیست؟ کار من کجا و کار کجا. یعنی امام سجاد سلوک عبادی و زاهدانه خود رو در مقابل سلوک زاهدانه و عبادی امیر کوچک می شمارد. خیلی مهم